اللهم انت السلام ومنك منک السلام و لک السلام عليک يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي و الله و بارکاته. السلام على الأئمة الحادين المهديين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 السلام علو علی ابن الحسین زین العابدین السلام علو محمد ابن علی باقر علم النبی السلام علو جعفر ابن محمد الصادق السلام علو موسی ابن جعفر الکاظم السلام علو علی ابن موسی الرضا السلام علو محمد ابن علی الجواد السلام علو ابن محمد الهادی السلام على الحسن ابن علي النذكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حللت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر الاحد مني لزيارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین خب در ادامه بحث دهه محرم این چهاردهمین جلسه شد در خصوص یک تفکری که در عصر ما بیشتر و در طول تاریخ هم متاسفانه به صور مختلف مطرح کرده بودن و خود این یکی از موانع تحقق آرمان و هدف انبیا در جامعه بشری شد و اون چه بود؟ نگرش پیروان مکتب وحی نسبت به وحی اگر ما افراد را نسبت به وحی بررسی کنیم در دستبندی کلی اولیه ارز کردم دو دستن دسته‌ای که منکر وحیان، نبوت را وحی را خدا را انبیا را دین را معنویت را انکار می‌کنند آن بحث دیگری است ولی بنا جهتی در پایان جلسه خواهم کرد که انشاءالله الله در ادامه این بحث در همین مکان به اون هم خواهیم پرداخت اما دسته دوم که بحث این ایام ما بود کسانیان که میگویند وحی را قبول داریم نبوت را پذیرفته ایم ولی تفسیری که از کارایی وحی میکنند و نگرشی که به توان وحی در رابطه با هدایت و سعادت انسنها مطرح میکنند به شکلی است که در واقع خود این نحوه تفکر مانع بهره از وحی و نتیجه بخشی وحی است و اون چیه میگن وحی توان حل همه مسائل ما انسان را ندارد به عبارت دیگر اون چه که در مکتب وحی برای هدایت انسان و سعادت افراد بشر مطرح شده حد اقلیست نه حد اکثری یعنی حد اقل ممکن را خداوند از طریق وحی به پیغمبر اسلام وحی نموده و پیامبر اسلام هم به عنوان قرآن کریم و سیره و سنت معصومین در میان ما قرار گرفته خب اگر حد اقل است نیاز بیش از حد اقل را چگونه باید ما تأمین کنیم میگن با خرد جمعی و دخالت عقل در فهم مسائل در واقع عقل را در عرض وحی بگونه ای قرار میدهند که حتی اگر عقل تشخیص داد یه مطلبی را برخلاف خلاف آنچه که وحی گفته است اظهار نظر کند اظهار نظر بنماید نماید نمونه هاشم فرامان بود که در دهه محرم بعضی با مدرک خدمت تو کردم و حالا در ادامه بحثم چه مقدار باز بشه ارائه کنم خواهید یافت خب جواب چی بود؟ گفتیم هم از نظر درون دروندینی این مطلب رد است هم از نظر خود عقل این مطلب رد می شود دیگه نمیخوام اون بحثایی که مطرح شد به اختزای زیغ وقت و عدم فرصت کافی و نیازی هم نیست که تکرار بکنیم. جمبندی سیزده جلسه گذشته به اینجا رسید که عقل نمیپذیرد اگر خدا حکیم است و مطلق کمال و قدرت است و حادی به حق است. ان چرا که به عنوان هدایت انسان قرار داده کم بود و نقص داشته باشد و اگر در طول تاریخ کتب آسمانی قبل از قرآن تحریف میشد یعنی شرایط لازم هدایت کامل رو نداشت و اگر قبل از اسلام ادیان به شکلی آلوده شد که آن که باید جلوه هدایت پروردگار باشد نبود خود همین دلیل شد که خداوند کتاب جدید فرستاد، پیغمبر دیگر فرستاد و اگر با خاتمیت دیگه کتاب جدیدی نمی‌فرستاد و پیغمبر دیگری را مأمور نمی‌کند معناش همین است که بر اساس حکمت الهی اونچه که لازمه هدایت انسان است به وسیله این کتاب و این پیامبر برای مردم پیشبینی شده است اینو عقل میفهمید و توضیحش هم دادیم اما از نظر درون دینی و نقل چقدر آیاتی در قرآن داشتیم که تصریح میفرمود که قرآن تبیان کل شیعه با توضیحاتی که داده شد حتی تا این بیان که در خطبه هیجده همه نهج البلاغه امیر علیه السلام فرمودند مگر دین خدا نقص و کمبود دارد که شما میخواهید تکمیلش کنید مگر پیامبر اسلام کوتاهی ورزیده که شما میخواهید جبران کنید خب حالا ادامه بحثش به یه جای بسیار حساسی رسیدیم جلسه قبل چی بود؟ گفتیم قرآن عنوان آخرین کتاب پروردگار همون گونه که در آیات اشاره کرده دو شعن دارد یا دو مرتبه دارد یک شعن لوه محفوظ است لدیناست یک شعن لارت بن ولا کتاب مبین است یک شأن مرحله نازله تجلی لوح محفوظ از عالم لاحوت و ملکوت به عالم ملک و لذا آیات اوزیداد که شعن ملکی قران را همه مردم موظفند تدبر کنن تعقل کنن تفسیر بجای قران بر مبنای این شعن است اما اون شعن ملکوتی قرآن که در لوح محفوظ است با استناد به آیات قرآن با هم بحث کردیم شأنی است که در دسترس هر انسانی نیست اون را متحرون به او دسترسی دارند لا یمسه الا المتحرون بر مبنای شأن ملکوتی و اگر این در این عالم به مقام تهارت نفسانی نائل شدن یعنی از ملک خارج شده ملکوتی شدن به اون شأن دست پیدا میکنند و این در اعتقاد ما شیعه معصومین و امامان علیهم السلامن و لذا این نکته کلیدی بسیار مهم برای حل همه اون شبهاتی که نسبت به این گونه نگرش اقلی بودن دین مطرح میکنن اینجاست اون چیه؟ اگر این انسونهای برجسته الهی ملکوتی که به تعبیر قرآن کریم متحرند نباشند و اگر به فرموده پیغمبر اسلام سقل دیگر که اطرتن در کنار این سقل که قرآن است قرار داده نشود این دین کافی نیست این کتاب قدرت هدایت ندارد درسته که قرآن کریم ولا رتبن ولا یابست الا فی کتاب مبینه ولی کتابی است سامت نیازمند به است ناطقه مفسر ناطق کتاب سامت در دو سطح قرار میگیره سطحی که ما انسان‌های عادی هستیم که اون با زوابتش تا یه محدوده میتونه جلو بره سطحی بر مبنای انسان‌های ملکوتی پاک و متحر و معصوم که به عمق قران و باطن قران راه پیدا میکنند و همه نیازمندی های ما را از آن لوح محفوظ لا رتبن ولا یابس بیرون میکشند و به ما معرفی میکنند یه روایتی رو از امام باقر علیه و السلام اصول کافی جلد اول صفحه پنجاب و نو بابشه ار رد الال و سنه و اینهو لیس شیعون من الحلال و الحرام و جمعی ما یحتاج و ناس الا و قد جا افیه کتابون او سنه ایه بابیه چندین روایت داره روایت شماره پنجم یه خطش مورد نظر منه خیلی زیبا و جالبه در رابطه با این بحث گلان ما داریم شخصی سوالی از امام باغر علیه السلام فرمودن حالا چون مفصله من وارد همه قسمت نمیتونم بشم این یه سطح که مورد استناد فعری و بندست میکنم. کنم سوالی از امام باغیر پرسیدن حضرت توضیح دادن ارز کردن آقا این کجای قرآن بود جواب حضرت رو ببینید حضرت فرمودن صفحه شست جلد اول اصول کافی اذا حدست کم به شیئن. فسالونی من کتاب الله اگر مطلبی رو از ما بپرسید از یه کتاب خداست ما به شما میگیم این از کجای قرآن در آوردیم یعنی هرچه ما برای شما بیان میکنیم از تو قرآن در بعد نمونه هاش رو ذکر کرده ولی من این قاعده کلی شو میخوام بگم خب این در توان همه انسان هاست نه باز اجازه بدید یه روایتی رو من از امام باقر علیه السلام تفسیر عیاشی جلد دو صفحه ده در این رابطه ارس کنم خیلی زیباست امام باقر فرمودن ولو ان الآیه اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شیء ولاکن القرآن یجری اوله علا آخره مادامت السماوات و العرض اگر یه آیه ای در یه مردمی یه جمعی یه خصوصیتی نازل شده حالا اگر اون جمع مردن رفتن اون خصوصیت از میان رفت این آیه مرد رفت پس از قرآن چیزی باقی نمیمونه که نه قرآن به گونه ای نازل شده است ممکنه در رابطه با یه قوم خاص باشه ممکنه در رابطه با یه موضوع معین الان مطلبی فرموده باشه ولی نحوه ای گفته شده که این برای همیشه ادامه دارد و لذا در همین تفسیر ایاشی جلد دوم صفحه بعدش صفحه یازده یه توضیح دیگری امام باقر علیه السلام اضافه کردن اونم جالبه فرمودن این قرآن همچنان جریان دارد یجری كما یجر شمس و غمر همونطوری که خورشید الان نسبت به خورشید هزار سال قبل اون خورشید نیست. اما این خورشیدم اگه الان نباشه منظومه شمسی به هم می ریزه. این خورشید نباشه تابش نور به زمین صورت نمیگیره. همچنانی که جریان اثر خورشید و ما باید باشد قرآن همچنین ادامه داره و داره شما رو هدایت میکنه خب اما نحوه استفاده از قرآن برای این هدایت آم بحث اصلی امشب ماست اینا در واقع تکمیل بحث قبلی بود پس قرآن کتاب کامل است و اون چرا خدای عالم که مطلق کماله لازمه سعادت فردی و خانوادگی و اجتماعی انسان دانسته به صورت کلی در بعد در قرآن کریم نازل کرده و چون بعد از پیغمبر اسلام دیگر کتاب جدید نیازی نیست چون نیازمندی در این کتاب پیش پیشبینی شده پیغمبر جدید نیازی نیست چرا؟ چون نبعی باقی نمونده که ما نیاز داشته باشیم که پیغمبر اسلام به عنوان نبی اون نبع را برای ما نیاورده باشه ولی چی لازم امام؟ همون انسانهای، الگوی، ملکوتیه، معصومی که میتونن با لوح محفوظ در ارتباط باشند و از لوح محفوظ عمر و بدن این آیات را خارج کنن و در اختیار ما بگذارند و به همین جهت اگر دیگه لازم نیست پیغمبر بیاد ولی اگر امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشینم میشه باید تحمل کنه صبر تو و پل عین قضا و فل حلقه شجا صبر کردم در حالی که استخوان در گلوب و خار در چشم چرا صبر کردم رأیت و لی معین و اهل بیتی بتی و زنن بهم ان الموت و سبر تا پ عین و فل من یه وقت دیدم غیر از این اده بیت خودم که اینا قرار بمونن و دینو به مردم بشناسونن بر به شکل صحیح به مردم معرفی کنن اینا الان میکشن و نباید اینا کشته بشن پس استخوان در گلو رو با تحمل کرد. پس خاره در چشممو باید تحمل کرد تا اینا بمونن اون نحوه ارتباط با ملکوت از لوح محفوظ گرفتن رو بگیرن و برسونن اگر لازم شد حضرت زهرا سلام الله علیها شهیده شود باید بشود اگر لازم شد امام مجتبی علیه السلام منزبی شود خانه نشین شود پای منبر باشه بالای منبر بهش فحش بدن باید تحمل کنه اگر لازم کربلایی باشد آشورایی باشد سر ابی عبدالله بالای نیزه برود زینب کبری به اسارت برود باید بشود تا زمینه کلاس امام باقر فراهم بشه تا زمینه کلاس امام صادق فراهم بشه تا توضیحات این امامان دویست و پنجاه سال بعد از پیغمبر تا غیبت امام زمان علیه السلام مطلب در اختیار مردم قرار بگیره خب پس مطلب اصلی قرآن است و نحوه فهم از قرآن حالا اینجا دقت بفرمایید برای جمیع شعون زندگی چگونه است یک دو دسته می شیعه سنی در بین سنت یه دسته در مسائل اعتقادی اشعری هن. اونا چی میگن؟ میگن عقل هیچی نمیفهمد فقط به ظواهر شهر اکتفا میکنیم خب اگر همین مقدار رو بگیریم خب ما بناس قرآن رو بفهمیم هم حدیثی که از معصوم در تفسیر قرآن گفته شده باید بفهمیم خب با چی بفهمیم اگر با عقل نفهمیم به زواهر این آیات و روایات بخوایم نگاه کنیم چجوری میتونیم نیازمندی هایی را که در طول تاریخ برای بشر مطرحه و خداوند به صورت کلی در قرآن فرموده و معصومین به صورت روایت توضیح اند حالا از دید اونها فقط پیامبر این چجوری اگر این نگرش رو بگیریم بله دین عقل است، اکثری نیست ولی این نگرش غلطه و جالب اینه از نظر کلامی اشعریان اشعری میگه عقل نه ولی از نظر فقهی از معتزلیان معتزلیتر شدن یعنی چی یعنی اومدن گفتن که ما در بحث احکام عقل را دخالت میدهیم به این معنی که نه عقل را دخالت میدهیم که حکم الهی را از قرآن و روایات بفهمیم بلکه عقل را دخالت میدهیم که اگر لازم شد خلاف حکمی که خدا و پیغمبر گفته به تشخیص عقل خودمون عوض کنیم و جعل حکم جدید بکنیم حکم جدید جعل کنیم حکم جدید باز کنیم یعنی کارائی عقل را در کنار وحی، در مکتب فقهی اهل سنت، نه همشون اکثریت، در مکتب فقهی اهل سنت که در مکتب کلامی و اعتقادی اشعریان عقل را قبول ندارند و حال اینکه که اونجا باید عقل بیشتر دقالت کنه در مکتب فقهی عقل را رقیب وحی می تا حدی که اگر تشخیص داد حکمی را عوض کنه سابقیاره لذا نمونه هاشو در تاریخ تصریح کردند مثلا آقا حیی علا خیرالعمل تو از آن بوده دستور پیغمبر هم بوده الان حیی علا خیرالعمل تو از آن اهل سنت نیست چرا میگن خلیفه تشخیص داد با چی؟ با عقل خودش چی تشخیص داد؟ جنگ با ایران بود زمان صدر اسلام جنگ با مصر بود قرار بود کشورها رو فت کنن و بگیرن گفت مؤذن داشت میگفت حیه الا خیرالعمل بشتابید به سوی بهترین عمل یعنی نماز خب اگه بهترین عمل نمازه ولی کسی جبهه نمیره که پس معلومه که بهتره ما اینو از اذان برداریم حالا بگیم الصلاه خير من النوم نماز بهتر از خابه یعنی اینجا عقل تشخیص میدهد یه چیزی را که وحی گفته خلافش نماز تراویح نمیگن زمان پیغمبر بود زمان خلیفه اول نبود زمان خلیفه دوم برای چی واجب شد نماز تراویه؟ آقا نماز تراویه یه نماز مستحبی شبه ماه مبارک رمضان، افراد در یه گوشه خلوتی مثل مناجات شبانه این نمازه ها رو درکت درکت بخوانند. مثل اونی که شما شب قدر مثلا مستحبه صد رکت نماز بخونید هزار رکت نماز بخونید اومد گفت من تشخیص میدم که این نمازی را که پیغمبر فرمود واجب نیست مستحب است و نمازهای مستحبی را شود به جماعت خون مگر یک چیز خاصی من واجب میکنم هم واجب هم به جماعت یعنی چی یعنی عقل من تشخیص شد جابجا بکنم یا اون بیان خاصی که در همه منابع ذکر شده تسریع کرد متعتان محللتان فی زمن نبی و انا احرم هما این در زمان پیغمبر حلال بود ولی من حرام میکنم نمیگه حرام بود اشتباه کردن گفتن حلال گفت حلال بود پیغمبر گفت حلال من میگم حرام این یه مبناس در فرهنگ فقهی اهل سنت ما نمیپذیریم انتقادم میکنیم حرفایم که توی این سیزده جلسه گذشته زدیم حکم خداست اینل حکم الا لله کسی در مقابل حکم خدا حق نداره عقلش رو دخالت بده برای جل برای وز برای تعویز و حاکزا لذا ما بحثی اونجا فعلا نداریم میاییم تو دنیای شیعه تو دنیای شیعه هم دو دست شدن با کمال تعصف یک دسته به شکلی برخورد کردن که الان براتون میخونم اگر این تفکر را بگیریم بله قرآن و اسلام و تشیع اکثریت نیست نمیتونه ولی این غلطه بزرگان ما در طول تاریخ خون دلها خوردن تا جلو این انحرافات رو بگیرن و بگن اینا نیست اشتباه نکنید ببینید چیه دو دسته معروف در دنیای شیعه پیدا شدن که نحوه استنباط و استخراج و فهم از کتاب قرآن و سنت حالا شیعه که شدیم میشه سنت دویست پنجاه ساله معصومین علیهم السلام چجوری میتونیم برداشت کنیم؟ دو دسته شدن یه دسته اخباریونن یه دسته اصولیونن من خیلی فشرده به اختزای وقت محدودی که داریم ارز میکنم اجازه بدید نمونه ای از تفکر اخباریون در شیعه رو بگم یک کسی غیر از معصوم حق رجوع و استفاده و استنباط از آیات قرآن را ندارد یعنی غیر از معصومین علیه مسلم هیچ کس حق نداره بگه ما میتونیم به قرآن مراجعه کنیم از قرآن چیزی بفهمیم برای فهم قرآن باید از اخبار امامان استفاده کرد اگر امام یه چیزی در زیل این آیه فرموده قبول کنید اگه نفرموده، فرموده بذارید کنار اون آیه رو روش بحث نکنید اگه دوران غیبت امام زمانه مثل زمانی کلام برای ماها مطرحه کنید تا امام زمان تشبیه ایشون ایشون هرچی فرمودن خب پس یه جامعه اسلامی در دوران غیبت امام زمان علیه السلام با داشتن یه کتابی مثل قرآن با این همه روایاتی که از معصومی نقل شده بگه ما در رابطه با اینا چیزی نمیفهمیم فهمیم چجوری دین میتونه اکثری باشه پس چجوری دین میتونه همه نیازمندی ها رو جواب بده دو عقل در درک حسن و قبه اشیاء حجت نیست احکام مستقل عقلی حجت نیستن سه غیر معصوم حق اجتهاد ندارد و لذا تقلید جایز نیست یعنی حق نداره کسی بگه من مرجع تقلیدم من رفتم به درجه اجتهاد رسیدم الان رساله عملی نوشتم میگم طبق برداشت من در دوران غیبت امام عصر السلام احکام الهی ایناست که اینجا نوشتم میگه نه شما چیکارید حق نداری اگر معصوم علیه السلام زنده بود میرم از معصوم میفرسم اگر معصوم در دوران غیبتش بود من به ظاهر روایات میگه اخرز من فقیه هم داره از روایت میگه ولی با یک دنیا مقدمات لازم فهم از روایت اخ این درد بعضیا میان میگن آقا چرا اینقدر تو مسائل کلامی فلسفی عرفانی عقلی وارد میشید مگر روایات ائمه کم دارد بریده باد اون زبانی که بگوید روایات ائمه کم دارد بریده باد اون زبانی که بگوید قرآن کم داره ولی عزیز بند برای فهم روایت امام برای فهم آیات قرآن در دوران غیبت منهای این مقدمات چه میفهمیم؟ روایت عام داره خاص داره مطلق داره مقید داره ناسخ داره منسوخ داره روایت با سند داریم روایت ضعیف داریم روایت جهلی داریم روایت با شرایط خاص زمانی و مکانی داریم یک عمر درس خوندن میخواد تا این مقدمات رو ردیف کنن بتونن این آیه و این روایت و رو کنار هم بذارن تا بگن حکم خدا چیه ولی از این بر اخباری میشه چی میگه آخه رو گفت من به ظاهر روایت تا این هد خب امام صادق علیه السلام پسری داشتن به نام اسماعیل، که این اسماییلیه منحرف شدن دنبال روح شدن در زمان حیات امام صادق اسماعیل از دنیا رفت امام صادق علیه السلام اومدن کفن که بهش پوشندن روی سینه نوشتن اسماییل و یشحدو الله الاخ الله. این مستحبه اخباری چی میگه؟ میگه هر کس که مرد روسینه کفن نش بنویسید اسماعیل و یشهدو میگه آقا اگر متوفا اسمش ابراهیم باشه چی میگه امام نوشته اسماعیل شما حق نداری بنویسی ابراهیم میگه آقا اخه عقلو به ما دادن عقل میفهمه چون اسم متوفا اسمایل بود اسم اسمایل گذاشتن حالا که اسم متوفا زن باشه من که نباید بنویسم اسماعیل یشهدو باید اسم اون زن رو بنویسم و بگم تشهدو میگه نه دیگه فزولی تو کاره چیز نکنی مثلا اجتهاد رو اشکال میکنن ملاعمین استرابادی بنیانگذار مکتب اخباری میگه دو روز بر اسلام سخت گذشت یکی روز سقیفه بنی سائده که خلافت و از مسیرش جدا کردن یکی هم وقتی که علامه هلی و خاج نصیرالدین توسی و قبل از او شیخ مفید اصول و اجتهاد و عقل را برای فهم احکام دخالت داد اه؟ تا این مقدار و با کمال تأصف الان خیلی دارن این حرف رو دامن میزنن به نام تفکر شیعی که این خطرناکه و این جامعه تفکر شیعی رو تضعیف میکنه حالا اجازه بدید تمام روایات کتب اربعه صحیح هست بحث سند و علم رجال اصلا نباید مطرح شود اه؟ میگه آقا خود امیر تو نحضر بلاغه میفرماد هر روایتی رو نمیشه قبول کرد. بعضی روایات جعلیه تو نحضر بلاغه میفرماد. بزرگانی که تأثب به روایت هم داشتن مثل مرحوم علامه مجلسی کتابی نوشته در فهم روایات کتب اربعه در این کتاب ایشون وقتی میاد بحث فهم روایات رو مطرح میکنه بسیاری از این روایات رو میگه اینها مجهوله مچهوله اینا سندش محرز نیست اینه نمیشه نسبت داد به معصوم شما باید در علم رجال و علم سند بیایید مطمئن بشید روایت مال معصومه این نوع سطحینگری رو, رو رواج دادن تا یه حرفی زدن که این حرف بسیار خطرناکه از شیخ انصاری خب شیخ انصاری رو در فرهنگ ما ها میگن چی؟ شیخ مطلقه میگن خاتم المجتهدی دیگه شیخ انصاری استاد همه فقه هاست دیگه مرد بزرگ عجیبی در دنیا فقه شیعه ایشون در کتاب فرائد الاصولش کتاب معروف مرحوم شیخ انصاری در بخش براعت و احتیاط یه مطلبی نقل میکنه در رابطه با تفکر اخباریگری که چقدر عوام را گول میزند حالا کی میگه شیخ انصاری شیخ انصاری کتاب اصول فقهه اینجا بحث فلسفه نیست بحث ارفان نیست بحث کلام نیست بحث اصول فقه نقطه مقابل اخباریون اصولیون که حالا با معیار اصولیون چجوری میتونه دین اکثری باشه که براتون عرض خواهم کرد ولی حرف شیخ انصاری رو براتون بگم میفرماید که مرحوم سید نعمت الله جزایری که اخباری بودن ایشون نوشته آیا تفکر اخباریگری رو دقت بفرمایید آیا هیچ عاقلی احتمال میدهد که در روز قیامت یه بنده ای از بندگان خدا را بیاورند و از او بپرسند تو چگونه عمل میکردی او بگوید به فرمایش معصومین عمل میکردم و هر جا که کلام معصوم نبود احتیاط میکردم آن وقت یه همچه آدمی را ببرند جهنم و از اون طرف یک آدم لاغید و بی به سخن معصوم را که هر حدیثی را به یک بهانه ترد میکند ببرند بهشت حاشا ها کلا حالا شیخ انصاری چی جواب میده دقت کنید یعنی چی یعنی علمای اصول فقه چون حالا اصولیون من اخبار یون کردم میگن تفکر نه، تعقل نه، استنبات نه، اجتهاد نه، تفسیر نه، درایت حدیث نه، به ظاهر روایت رد بشید فقط. اصولیون چی میگن؟ که از دوران غیبت کبرا کیا اصولی بودن؟ شیخ مفید، شیخ توسی. بیاید تا برسید به علامه هلی، خاج نسیر دین توسی. بیاید برسید تا به امثال مرحوم بهبهانی که با امین استرابادی بحث کرد و تفکر اخباریگری رو توی کربلا پنبش رو زد وگرنه بیچاره میکردن کردن رو اومد رسید تا به شیخ انصاری اون رجل الهی اومد رسید اصلویون اخیر ما کیا معروف بودن؟ میرزای نایینی هجازیای عراقی مرحوم آقای رضای همدانی تا اومد رسید به یکی از برجستگان علم و اصول فقه، مرحوم آیت الله از شاگرداشون مرحوم آقای خویی اومد رسید تا عصر ما. همینی که ماها الان به عنوان شیعه میگیم اگه خودمون مجتهد نیستیم، باید یه مرجع تقلید اعلا و اتقای رو شناسایی بکنیم، مقلدش بشیم. اینو میگن اصولیون. چون قائل اصول فقه هستند، با معیار اصول فقه کلان الان عرض میخوان از قرآن و روایات استنباط احکام شرعیه بکنم. ولی ایشون چی میگه؟ ایشون میگه چون علمای اصول فقه یعنی شیخ مفید یعنی امثال شیخ توسی که دوتا از چهار کتاب کتب اربعه ما رو شیخ توسی نوشته میگه اینا هر حدیثی رو به یه بهانه رد میکنن لاغیدن اون خدا اینا رو که دارن اجتهاد میکنن اصولی فکر میکنن اینا رو میبره بهش ولی به منی که میگم به ظاهر روایت نگاه میکنم عمل میکنم اگه جاییم روایت نبود احتیاط میکنم منی میبره جهنم حالا شیخ انصاری جواب چی دادن؟ مطلب عوام پسند است تعبد اینگونهی ای. تسلیم به قول معصوم نیست تسلیم به جهالت خودشون است عجب ملایی جواب داده عجب ملایی جواب داده خوب به بفرمایید تعبد این گونه ای تسلیم به قول معصوم نیست تسلیم به جهالت است اگر واقعا مهرز شود که معصوم سخنی گفته است ما تسلیمیم ولی شما میخواهید جاهلانه به هرچه میشنوید تسلیم شوید چقدر این حرف قشنگه چقدر این حرف امیقه میگه آقا ما داریم چی میگیم ما میگیم قرآن وحی است شکی درش نیست سخن معصوم با اون توضیحاتی که مخصوصا جلسه قبل دادم معصوم کیه معصوم ملکوتی ارتباط با لوح محفوظه ولی سخن معصوم باشد نه مطلبی را که سند ندارد و از معصوم نقل نشده جل کردن نسبت دادند و تازه سخنی که از معصوم به ما رسیده در کنار سایر سخنانش با معیار وسیله شود تا بتونیم استنباط احکام بکنیم این دستره میگن اصولی حالا اگر بر مبنای اشعری فکر کنیم دین اقلیست اگر بر مبنای فقه اهل سنت که عقل میتونه جعل حکم کنه حکم خدا را عوض کنه دین اقلی اگر بر مبنای اخباریگری فکر کنیم بله دین اقلی ولی اصولی حالا ببینید چطور استدلال میکنه دین اقلی نیست دین اکثریه حالا اصولی چی میگه؟ خوب دقت بفرمایید. خب حالا اصولی چی میگه؟ اصولی میاد میگه که آقا ما وقتی قرآن رو کتاب کامل میدونیم بحثی درش نیست با اون توضیحات گرز کردیم دویست و پنجاه سال هم سنت معصوم داریم اینم کم نیست ولی از اونجایی که با کمال تعصف دشمنان ما شیطنت کردن احادیث جعل کردن الان من یه نمونه عرض کنم آقا روایاتی داریم تو کتب روایی ماشی هم اومده جاشم الان به تو میگم کجاست و بعد میگم فقها ها چی جواب دادن؟ روایاتی داریم که اگر کسی سه روز به نماز جماعت حاضر نشد خونه شو میشه آتش داد. این تو وسائل شیعه باب نماز جماعت این روایات بابی داره. ولی هیچ فقیه شیعه فتوان نداده. اصولی به این روایات اعتنان نمی کنن. چرا؟ حالا دقت کنید. اولا روایات سند نداره. با سایر معیارهای روایی و مکتبی ما جور در نمیاد ریشیابی کردن این روایات رو ریشیابی این روایات چیه؟ در صدر اسلام وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان اعتراض خانه نشست و نمیخواست تو نماز جماعت مسجد و نبی بیاد حدیث جل کردن که پیغمبر فرموده کسی سه روز نماز جماعت نیاد خونش میشه آتش زد بهانه کنن خونه امیرالمومنین آتش بزنن خب این روایات جلی تو روایات ما اومده ولی علمای اصولی چی میگن میگن آقا درسته تو کتاب اومده ولی قابل اطناع نیست این رو نباید قبول کرد و هیچ کس هم بر مبنای این روایت فتوا نمیده اصولیون میگن چی میگن روایات جعلی هم داریم اما این به معنا نیست که ما روایتو تضعیف میکنیم اولین کاری که می‌کنیم کنیم قرآن اینجا روایات سهی رو از ناسهی جدا کنیم یه نمونه از این کار در علماء اصولی مرحوم آی خویی نزدیک سی جلد کتاب نوشته معجم و رجال الحدیث این سی جلد کتاب چیه بیستو خورده جلده نزدیک سی جلد ببینید چه کار کرده مثلا روایاتی که ما داریم الان تو همه اصول کافی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی نقل کرد از امام صادق علیه السلام اولا این فلانیا اینو میگن علم رجال این فلانیا قابل اعتمادن یا توشون دروغو هم هست اینو واسه جدا کنن یعنی یک علمیه که اگر تو این روایت پنج تا راوی داره ممکنه سه تاش راسکو باشن دوتا تا دروغو ممکنه چهار تا راسکو باشن یکی دروغو میگه اگر یه دونه دروغو هم توش بود قابل قبول نیست چون باید ببینید کیه چجوریه بعد کار عجیبی که ایشون کرده خیلی عجیبه اینه مثلا فرض کنید در سلسله رواتما داری محمد ابن مسلم پنج تا دا داریم دو تاش سغن سه تا دروقوان حالا توی یه روایتی اومده فلانی ان فلانی ان محمد ابن مسلم خب از کجا بفهمم این محمد ابن مسلم جزء دروقواس یا راسکوا اومده این کاری کرده یک کار 40 پنج ساله است اومده این کارو کرده محمد ابن مسلمایی که سغن تو چه زمان بودن؟ معمولا از کدوم راوی ها نقل میکنن؟ راویای بعدی که از اونا نقل میکنن کدومن؟ اینا رو جدا کرده. محمد ابن مسلمایی که ثقه نیستن در کدوم تاریخ بودن و در اگر در یه روایتی شرایط به گونه ای بود که این محمد ابن مسلم قابل تشخیص نبود، اینجا روایت زنیه. ظنی رو نمیشه حکم قطعی داد. باید در اینجا احتیاط کرد. ببینید چقدر کار میبره. یعنی عالم و اصولی میاد میگه اولا تو روایت تو سند این کار رو میکنم. تازه بعد از سند تازه اول کلامه. خب حالا آیه رو داریم؟ روایت هم داریم. بیایم سراغ آیه و روایت چه کار کنیم؟ میگن که عقل اینجا باید دخالت کنه. عقل دخالت کنه به چه معنی؟ به معنی که اشعری گفت حسن و عقلی نداریم؟ میگه نه ما حسن و عقلی داریم. به معنی که در فقه اهل سنت گفتن عقل میتونه حکم خدا رو عوض کنه میگه نه عقل نمیتونه حکم خدا رو عوض کنه تصریح شده در قرآن کریم ان حکم حکم لله حکم ازان خداست نمیتونه عوض کنه به معنایی که اخباری میگه عقل هیچی نمیفهمه به ظاهر روایت نگاه کن میگه نه میگه عقل وظیفه دارد چه کند دقت کنید یک حالا تو بحث احکامه عین همین تو بحث عقاید مطرح میشه با کمال تأصف ما مواجهیم با افرادی تو همی عصر ما بعضی ها اخباریگریشون اونقدر شدیده که هم تو احکامی حرفو میزنن هم تو عقاید. بعضی میگن نه تو احکام این دقتها خوبه ولی تو عقاید این دقت نمیخواد من تعجب میکنم میگم آقا عقیده که از احکام مهمتر اصول دینه احکام که فروه دینه، شما در اصول دینم نیازمندید اگر یه آیه راجب امامت یه آیه راجب نبوته، یه آیه راجب معاده، یه روایت راجب نبوته باید با این معیار جلو برید و بحث بکنید. ولی متاسفانه اینا رو تضعیف کردن اون وقت مخالفین ما دو دستن یه دسته مقرزن همینو علم میکنن به خدا قسم، انقدر مواجه بودم با این شبهات تو محیط علمی خارج از ایران بعد میگفتم آقا این هایی که شما میگید مال اخباریونه این مال شیعه اصولی نیست اگه شیعه اصولی رو گفته به من انتقاد کنید شیعه اصولی داره این میگه می یه سنگ رو میندازه توی چه باید چهل تا عاقل بیان بکشن بیرون یه دسته مقرزن عمدن اینا رو دست میدازن میگن بفرمایید شما میگید دین اکثریه ظاهر روایت رو میبینید استنباط هم که قبول ندارید تعقلم که قبول ندارید پس چجوری میتونه دین اکثری باشه یه دسته دیگه مقرز نیستن ولی بی حرفا نگاه میکنن بلاخره خودشان فکر داره میگه این با فکر جور در نمیاد پس معلوم شما متعصبید شما هم مثل داهشیا هستید داهشیا سرشون رو گذاشتن به دیوار اسلحه‌را هم به دست گرفتن میگن همینه که ما میگیم هر کیم غیر از این بگه میکشیم پس شما با داعشی ها چه فرق کردید میگم عزیز من ببینید ما چی میگیم ما میگیم شیعه اصولی میگه عقل نه به شکل اشعری نه به شکل اعتزالی نه به شکل اخباری به شکل اصولی به شکل اصولی چی میگه میگه یک در جایی که نص شما حق اجتهاد ندارید در جایی که نص نیست آیا معصومین نفرمودند علینا الغاء الاصول و علیکم بالتفریع این روایته یکی دوتام نیست علمای اصول فقط کلمه اصولم هم از همین جا گرفتن از خود مصوم گرفتن میگن ما اصول کلی رو به شما یاد میدیم شما فروعات رو به کمق عقل بر مبنای این اصول به دست بیارید خبا من یه نمونه شو کنم چون بحثای تخصصی فقهیه خیلی هم شاید توی جلسات عمومی نشه بحث کرد ممکنه خسته کننده باشه ولی اجازه بدید من یه مثال سادهشو رو عرض کنم مثلا فرض کنید در فقه اهل سنت که قیاس به معنی تمثیل و استحسان پذیرفته شده اومدن چی میگن؟ میگن هر حکم یه موضوع داره یه محمول داره یه حکم موضوع مثلا فرض کنید شراب محمول حرام حکم است موضوع شراب محمول نجس حکم است پس شراب حرام است شراب نجس است این موضوع این محمول این حکمه میگن اگر عقل ما قیاس و استحسان ابوحنیفه ای اگر عقل ما یه مشابهتی بین این موضوع با یه موضوع دیگه فهمید این محمول و حکمم میتونه روش بیاره اصولی شیعه چی میگه میگه اگر خیلی فرق داره میگه اگر شما این قاعده کلی عقلی رو در نظر گرفتید قاعده کلی عقلی چیه هیچ حرامی نیست مگر اینکه ای داره هیچ حلالی نیست مگر اینکه مصلحتی مسلحتی داره لذا یک بحث عقلی اصولی علمای اصول فقه مطرح میکنن تحت این عنوان که احکام الله, احکام الله حلال حرام حالا به همین طورت مستحب مباه مکرو احکام الله حلال و حرام تابع مسلحت و مفسدت هست یعنی مصلحتی داشته شده حلال یه مفسدتی داشته شده حرام خب اگر ملاک حکم را که رابطه محمول با موضوعست عقل توانست تشخیص بدهد میتونه به موارد دیگر تسری بده ولی عقل نه زن اوهام الان مثالشو ارزو کنم میگن این میشه مثلا نمونه هایی که تو فقه اسم بردن. حالا اینن من از کتاب شیخ انساری براتون میخونم میگن مثل قیاس منسوسول الله قیاس اولویت یا قیاسی که تنقیه منات شده حرف خیلی قشنگ حالا عرض میکنم یعنی چی قیاس منسوسول الله مثالی که مرحوم شیخ انصاری میزنه میگه ببینید مثلا در دین اومده موضوع محمول حکم علتش رو بیان کرده گفته شراب نجس است چون مسکر مایه است پس علت و حکم معلوم شد چرا در اسلام شراب نجسه چون مسکر و مایه میگه خب حالا اگر ما هر مسکری رو پیدا کردیم مایه بود ولی او زمان پیغمبر نبود فقیه داره بگه نجسه یا نه میگه بله دیگه میگه چون منصوص ال است چون علتش در نص به ما شناسنده شده یا مثلا قیاس اولویت میگه شما در آیه قرآن دارید راجب پدر و مادر ولا اف. حق نداری به پدر و مادر اه! یه اینجوری هم بکنید میگه خب من میتونم از این حکم در بیارم اگر موضوع محمول حکم اینه به طریق اولویت پس حق زدن ندارید حق آزار رسندن ندارید این فقیه فتوا بده میگه کجای قرآن گفته میگه قرآن گفته اف میگه این قیاسه اولویتش میاد یا مثلا در تنقیه منات قیاس مستم به طول الله به این معنی میگه مثلا میاد دین به شما گفته که آقا از معصوم پرسیدن من دارم از مدینه میرم مکه سوار شطورم میشم نافله های مستحبی رو میتونم روی شطور بخونم امام میگه بله اشکال نداره خب اینجا فقی عقل دخالت میده با غرائن میگه آیام شطور موضوعیت داره یا بحث مرکبه شطور موضوعیت نداره، بس مرکبه. خب حالا شطور نبود، اصل بود. اصل نبود اتومبیل بود اتومبیل نبود هواپیما بود همین کلام فقهای ما فتوا میدن آقا اگر شما تو هواپیما نشستی نماز مستحبی نافله میخوای بخونی همونجا نشسته ولو رو به قبله نیستی بخونی اشکال داره میگه نه میش این کار انجام داد میگه آر روایت گفته شطور میگه مسعمونیه که اسماعیل یشهد و الله اله الله میگه خب اینجا عقل میتونه به همین نحو میایم در مسائل دقیقتر اجتماعی مثلا اقتصاد چون بعضی عزیزان تو دانشگاه به من هی مراجعه میکردن مخصوصا این نکته رو هی میپرسیدن حتی مثلا تو موضوع اقتصاد آقا اصل ثابت حکم الهی در نص قرآن و در روایات معصومین رواه حرام است پس ما به هیچ نهوی نمیتونیم استنباد کنیم که میشه ربا داد نه رواه حرام اما این بحث مطرحه چی ربا میشه چی ربا نمیشه اینو فقیه میتونه بحث کنه بله اسلام گفته ربا حرامه ولی این موضوع ربا هست یا ربا نیست این از شرایط اقتصادی بر یا مثلا در اسلام تو بحث کلی اقتصادی آقا گران فروشی حرامه ولی بحثی در نیست ظلم، گناه حرامه اذیت به مردمه ولی در چه شرایط زمانی و مکانی ایکس گران فروشی حساب میشه ایگره فروشی حساب نمیشه؟ تو شرایط زمانی و مکانی فرق داره بله اینو فقیه باید به کمک عقل با اون سوژه اصلی که در مکتب داره کنار هم بذاره استنباط کنه وگرنه خیال میکنن صرف یه رو دیدن نظر دادن آمیس اینه که من یه آیه تو قرآن میبینم ما رمیت از رمیت بلکه الله رمى خب جبر دیگه همین توی شهرستانی سخنرانی میکردم راجع به شفاعت بحث میکردم نمیدونم گفتم یا نه یه خانومی به من زنگ زد خیلی تند و عصبانی خیلی عصبانی آقا شما خلاف قرآن داری میگی. همین اوایل قرآن، اوایل سوره بقره راجبه بنی اسرائیله که اینا رو تافته جدا باخته میدونن و میگن که ما که بهشت میریم از ما شفاعت میشه، میگه نه شفاعت قبول نمیشه. این اول قرآن خونده بود. گو این آیه میگه که قیامت روزی است که درو شفاعت قبول نمیشه. شما داری شفاعت بحث میکنی؟ گفتم خانم. اینو در کجای قرآن دیدی؟ کو سوره بقره آیه 30 خورده ای. گفتم همین سوره بقره رو یکم برو جلوتر با آیت الکرسی برس. میگه که منزل ذی یش و عنده الا باذن الله. این قرآنه؟ گفتم بله. خب ببخشید. گفتم همین با یه آیه دیدن مشتهد شدی فتوا دادی؟ این درد زمان ماست. با یه حدیث دیدن میگن حدیث اینو گفته. با یه روایت دیدن اونم تازه سندش دیدن میگن اینو گفته. بابا اصولی پدرش در میاد تا فتوا بده. میگه تمام زوابه تو باید ببینم کناره هم قرار بدم تا بتونم اینا رو در کنار هم قرار داده برداشت کنم خب مرحوم های خویی اصولی معروف اصر ما بوده اجازه بدید من از کتاب البیان ایشون یه مطلبی از صفحه 13 یا مطلبی از صفحه 398 بخونم باز این بحث رو من بنا داشتم امشب جمع کنم ولی نمیشه حالا ادامه میدم عرض میکنم چه کار میکنیم مرحوم های خویی که استناد به روایات ضعیف در تفسیر قرآن مسلما جایز و است و تنها با استناد به روایات صحیحی که به طور قطع از معصوم صادر گردیده میتوان حکم داد ما معمولا در تفسیر یک آیه از مفهوم آیه دیگر استفاده میکنیم و خود قرآن را وسیله درک معانی قرآن مر قرار میدهیم و در فهم قرآن از خود قرآن یاری و راهنمایی میطلبیم و احادیث صحیحه وارده را بر این روش و بر آنچه از ظاهر آیات قرآن فهمیده ایم شاهد و معید می آوریم. بله یعنی ما می, می گیم آقا آیه درست گاهی آیه رو باید با آیات دیگه توضیح داد گاهی آیات باید روایاتی که در زمینش اومده ببینیم چه میشه بعد بیایم حالا مثلا فرض کنید در نظام اقتصادی امروز کره زمین آقا یک علم بسیار پیچیده است قبوله تو دانشگاه های معتبر دنیا شاگردهای خیلی زرنگ و جدا میکنن آقا بیاد شما تو اقتصاد خوب مطالعه کنید طرح اقتصادی بدید اما این دوتا بحثه یه طرح اقتصادی بر مبنای شیطنت بر مبنای حقوق بازی، بر مبنای استثمار، بر مبنای استحمار، بله من الان یه طرح اقتصادی تو کشور خودم پیاده میکنم مثلا فرض کنید که که کتاب بشه های دیگه خونشون رو بمکم ولی جامعه خود من در یه رفاه باشه اسلام میتونه اینو قبول کنه؟ مطلقا چرا به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن آقا معاویه سر رو شل کرده این همه مردم رو داره به خودش همراه میکنه تو علی منده وزش؟ تو هم یه کاری بکن مردم من از خدا خب من نیومدم فقط برای حکومت خودم کار کنم من اومدم حق را در جامعه پیاده کنم ما نظام اقتصادی که کلک میزنه حقوق بازی میکنه استثمار میکنه سرمایه های ملت های مظلوم رو میچابه نمیتونه اسلام قبول کنه چون ظلمه اما نظام اقتصادی آقا الان فرض کنید برید دانشجویای عزیز، تو دانشگاه های مختلف اطلب بل و ولو به سین برید نظام های اقتصادی رو یاد بگیرید بیایید کنار دست فوقه ها بشنید مهارهای شرعیش از این طرف معیارهای اقتصادی از این طرف طرح بریزید اقتصاد اسلامی که شروعش مرحوم شهید صدر پنجاه سال قبل وزه نجف کرد و کتاب اقتصاد و نام در اومد کتاب فرسافت نام در اومد. ما به جای اینکه نیرو صرف کنیم برای فهم بهتر میاییم اونایی که میفهمن میتوبیم. بعدم یا اشعری فکر میکنیم یا اخباری فکر میکنیم یا اعتزالی فکر میکنیم و وقت چطور دشمنان ما مخالفین ما بل نگیرن و نگن که اسلام دین اقلی است. یا مثلا یه اشکال دیگه‌ای که اینجا شده دیگه وقت اجازه نمیده میگن آقا اصلا این مسائل اقتصاد، سیاست، عدالت، نظام اجتماعی مربوط به دنیاست در عین اینو گفتنا حالا با ذکر سند و صفحه براتون میگم اسلام که برای دنیا ارزشی قائل نیست پس معلومه اسلام برای اینا فکری نکرده حالا انشالله اینم اینا میکنیم، باز با هم صحبت میکنیم. ما این بحث رو تمامش میکنیم بعد از تمام شدن این بحث اگر عمری بوده خدا خواست و عنایتی شد این بحث دیگر هم شروع می کنیم که اصلا چرا به وحی ما احتیاج داریم اون دسته اول که میگن وحی بده وحی نه دلیلی که ما میگیم وحی بله چیه و این شبهه معروفی که الان تو جامعه پخش شده و تو سایت هم خیلی دامن زده میشه که قرآن رؤیای پیغمبره آیا این حرف میتونه درست باشه؟ و قرآن معجزه جاوید الهی تجلی حضرت حق در لوح محفوظه؟ و تجلی لوح محفوظ در این عالم به دو صورت تدبر اجتهادی اصولیون نتیجش تدبر معصومین از عمق شکافته شدن اینم انشاالله ممکنه یه خبش ده جلسه نیاز باشه نمیدانم خدا چقدر توفیق بده بتونیم با هم پی بگیریم انشاالله ادامه خواهیم داد خب اجازه بدید دیگه در آستانه اربعین حسینی هستیم دلا همه رفته و خدا میدونه وقتی تو تلویزیونی سحنه های عشق حسینی رو دارن نشون میدن من کنترلم سخته ولی با خود امام حسین نرز میکنم آقا شما شاهدید که من دلم اونجاست اما اجازه بدید ما به این کارهای خودمون فعلا بپردازیم و امیدوارم که انشالله با معرفت شرایطی پیش بیاد که بتونیم بریم گفت که جابر عبدالله انصاری من نمیدونم این مرد چه توفیقی داشته که در کره زمین مطرح نمیشه اسم جابر برده نشه پیرمردی که امام حسن و امام حسین از بچگی روشونه‌هاش سوار می‌شدند و امام حسن و امام حسین رو کولشون میزاشد اون بزرگواران به جابر میگفتن امو جابر از اصحاب پیغمبر از یاران امیر المؤمنینه. تو جنگ سفین چشماشو از دست داد نابینا بود تو کربلا نمیتونست بیاد ولی وقتی که بعد از آشورا شد گفت من انقدر که میتونم انجام وظیفه کنم اولین ظاهر عربعین حسینیه اومد کوفه پیش عتیه. عتیه منو به کربلا برسو میگه اومدم به فرات رسیدیم گفت کمکم کن من تو فرات قصد کنم قصد کرد احرام پوشید مثل حالت احرام حرکت کرد به سوی قبر ابی عبدالله من تا قبل از مرحله فرات و قص کردن و محرم شدن میدیدم جابر با شتاب میاد پیرمرد ولی اونجا گاماشو خیلی کوچولو برمیداشت گفتم جابر چی شد حرکتت کند شد؟ و یه روزی پیش پیغمبر بودم حسین رو زانوش نشسته بود. حسین میبوسید و میبویید. من عرض کردم یا رسول الله خیلی حسین رو دوست داری. فرمود این حسین من و همین امت شهید میکنند. هر کس در فرات غص کند و برای زیارت حسین با معرفت حرکت کند، هر گامی که برمیدارد خدا اجر هزار حج و عمره مقبوله به او میدهد. من گاما رو دارم کوچک برمیدارم. میخواد پیام اما یه وقت نابیناست میگه به نزدیکی های قبر که رسیدیم او که چشم نداشت ببین اینجا قبره دیدم به سرعت دویی صدا زد حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین حبیبی ها حسین خودش شد رو قبر گفتم جابر گفت به خدا بوی حسین به مشامم آمد بیهوش شد آب آوردم جابر رو به هوش آوردم ولی وقتی به هوش آمد گفت حسین جان من امو جابر شما هستم سلامت میدم جواب سلام منو نمیدی. چگونه جواب منو بدی که بید سر و بدن منزل ها جدایی اندختن عطیه میگه جابر داشت اشکبازی میکرد با قبر ابی عبدالله یه وقت دیدم صدای زنگ کاروانو. اومد. گفتم جابر مسی که یه کاروان داره میاد شما یه گوشه مخفی بشو نکنه اموال یزید باشن رفت جلو و برگشت گفت جابر بشارت کاروانه ابی عبدالله او بده صلی الله علیه یا اب عبدالله لا لاروا التي علت عليك من سلام الله ابدا ما بغيت رباك يا ليل وبلى جل اللَّهُ غير الاهدي بالليل زيارتكم السلام على الحسين لا لا يا ابن أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن السلام عليكم يا رحمة الله الباسد يا باب نجات الأمم یا سیدنا و مولانا اینا تبجهنا وستش و تبسلنا به کهل الله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیحن عند الله اشفالنا و این اللهم باسمك العظيم کللاظیم العز زلا جلل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 الماد ان لك مجيب الدعوات ان لك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين إلهي يا حميد وبحق محمد يا لي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن وبحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين و تسعط المأسوم من زرية الحسين اللهم عجل وليك الفراج الله من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من الدين وخ من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم شغل الظالمين بالظالمين واجعل بينهما سالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا خدایا سفر همه مسافرین اخذ زائرین حسینی بی خطر بگردان سالمن غانمن با اوتا بازگردان خدایا ریشه دشمنان مکتب حق داعشی ها و آل سعود و آل خلیفه و آمیانشون خشک بگردان ما را در فتن آخر و زمان ثابت قدم بدار خدایا این مملکت رو دشمن شاد مفرما اسلام و مسلمین نصرت انایت بفرما و سلام علیکم و رحمت